ما در روایات فراوان داریم که خداوند فردای قیامت هر کسی را که در هر شرایطی باشه مثلا حتی روایت اینجوری داریم مثلا جوانی رو میارن که خیلی زیبا رو بوده و ثروت زیادی هم داشته امکانات فراوانی در اختیارش بوده به آلودگی کشیده شده میگن چرا آلوده شدی؟ میگه جوان بودم زیبا بودم ثروت داشتم خدا جوانهایی که پاک بودن و این شرایط داشتن اینا رو صحنه قیامت حاضر میکنن میگن اینا جوان نبودن؟ اینا زیبا نبودن؟ اینا امکار... چون روز قیامت هم میدونید یا اومن؟ تو دیگه همشی برلا میشه قبلا عرض کردم اگر ما در دنیا بتوانیم شهود منامیه پیدا کنیم یه درجه بالاتر شهود موتیه پیدا کنیم موتو قبل تموتو بالاترین درجه شهود شهود قیامتیه است در قیامتیه همش بیداریه اناس و نیامون ازاماتو انتبهو تازه قیامت انتبهوی که با یوم تبلست سرایره. اینا چون قبلا روشن شده الان کاربردشو ارزون میکنم. وقتی همه چیز بر برملا شده همه اینو میدونن میگه خوب این جوونا چطور؟ به طرف میگن چرا گناه کردی؟ میگه سربت هم یه جوری بود که منو قلقلک میداد. میگه رو بیارید که پاک زیستن. اینا چی بودن؟ قدرتمندانی که با قدرتشون آلوده شدن. قدرتمندانو میارن اینا که قدرت داشتن. پس اینا رو چی میگید؟ عزیز من، خواهرم، برادرم، فکر خودمون باشیم. ما صحنه ای رو در پیش داریم. ای رو نمیزنیم فقط یه چیزایی رو یاد بگیریم یه حرفا رو میزنیم که انشالله سیرورت پیدا کنیم با اون حرفا آقا ما روزی رو در پیش داریم یوم بلس سرائر یک روزی رو در پیش داریم فتر المجرمینم مشفقینم ممافی و یقولون یا ویلتنا مال حازل کتاب لا یقادر و ولا کبیره الا احساب یه دونه از اون عزیز من قرآنه اینه که من نمی بافم قرآن ببوسم والا سر بذارم کافیه خونه نو خریدم قرآن بذارم کافیه سر صفره عقد قرآن بذارم کافیه داری میگه یک دونه از اون گناهان کوچک و بزرگ شما نیست مگر حساب میکنن فردای قیامت به روختون میکشن میگن اینا چی بود؟ چهار روز بهت مهلت دادیم تو دنیا اینجور بعد پاکان میارن در مقابل ما ما اگر یه همچه روزی رو در پیش داریم آیا نباید به فکر خودمون باشیم که چی کار داریم میکنیم مردم بد بودن مردم بد باشن به من و شما چی؟